و الحمد لله رب العالمين و صلال الله عنه سیدنا رسول الله فعال الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم الحمد و رحمتتی آمین از شد راجع به بحث اجماع عبارات محوم و استاد رو اجماع نخوندین. ایشون اول راجع به اجماع معقول به خبر واحد بحث کردن بعد راجع به اجماع محسن باشه به اجماع منگول گفتن عادتاً باید بعد از خبر باشه نه همیتی نداره عادتاً باید بعد از بحث اجماع باشه یعنی ارز کردی منشه اشکال هم در کلمات مرگوم شیخ ارزم احساری بود در خلال بحث ها که بحث, بحث اجماع منگول در شیعه بیشتر در شیعه مطرف شده و اثر داره نه در احسان نه البته بحث اجماع منبول به خبر واحد در مصادر اهل سنت هم اوماده که حالا توضیحش از بدیم. اجما ران از کردیم اجماع در مصادر اهل سنت به معنای مصدر تشریع و اجماع در کلمات قدمايه اصحاب ما مست بغادی ها به معنای طریق دلیل طریق به تشریع یعنی جزء ادله قرار داده شده مثل خبر واحد لذا این دوتا با هم دیگه دو مبنای مختلفن کاملا مبانی اهل سنت با ما کاملا دو مبنای مختلف هم. در مبنای اهل سنت واقعا باید اگه اتفاقی و اجماعی باشه اما در مبنای اهل شیعه چون مراد کاشفیت هم. تدریجن علما و اصولین تصریح کردن مراد از اجماع پیش ما وجود مقداری از آراد فقه ها که بتانیم قول امام رو کشف بکنیم این مقدار حالا ممکن است همه فقه ها باشه ممکنه وحضی از فقه باشه و خوندیم که مربون استاد هم از بعضی ها که سه تا از فقه ها اگر اتفاق بکنن من میفهم بکنم الله الابعیه انشاءالله این مطلب رو از اهل سنت هم نهاری میکنیم سنویام این مطلب دارن اخصاص به ما هم ن این مطلب روشن بشه و اون چه که مرموم اصطاد اشکال کردن برگیت اجماع منقول این بود که خبر واحد شامل اخبار حدسی نمیشه و اینجا اخبار حدسی است چون سیر مرتضا که نقل اجماع میکنه حدسا نقل کلام امام میکنه پس این میشه اجماع خبر واحد در امور حدسی که قابل ربول نیست اصلا حضورتون که در باب این مسئله که ایشون فرمودن دو نکته جای توجهه یکی حقیقت اجماع دوم حقیقت حجیت خبر این دو نکته رو باید در نظر گرفت اما نسبت به حقیقت اجماع چون در این مدنا اولا ایشان مرمو استاد با این مطلب رو واضح میکردن که چه مقدار قول فقه کاشف از قول امام و چی و به چه نحوی و با چه خصوصیاتی خب اگر کسی قائل شد که اصولا اقوال علماء به هر شکل چه قدما چه متذکرین چه احل هسته واده چه احسار این کاشفیت از قول امام نداره پس این بحث اصولا است، جای بحث نفر نیست جای صحبتش نفر یعنی شما اگر اجماع محصل رو دارایی توسیت نداره از قول امام باشه خب دیگه چه بحث به نه رو میکنی از اف ایلال اون نقطه ای رو که ما در چلال بحثای صابقه دایی اشاره گای دا تلویه هم هستی هم گفتیم ناقلین اجماع متعدد در که این نکته رو برکزی اما پس بنابراین اولا ایشان باید این مطلب رو ثابت بکنند. که چه مقدار از اقوال فقه ها و با چه خصوصیتی کاشف از قول امامه اگر میخواد وارد بحث بشن دو این که آیا اون کسی که ناقله همون مقدار رو نقل کرده یا نه پس این نکته اساسیش اینه خب دقیق بکنه نه این رادی که برگمه استاد مناقشه فرموندن نکته اساسیش اینه نکته اساسیش اینه که یک از اینشان باید سوال بشه توی این بحث اجماع بود به خبر واحد که اینجور مناقشه کردم صحیحش اینه شما چون اجماع رو کاشف میدونین مرادتون از اجماع کاشف چیه؟ سوال مثلا از کردیم مرحوم استعلاوازی با این که اجماع رو جدیم میدونه میگه اگر قدم ها مطلبی گفتن چرا قبول داریم پس بنابراین مختزای قاعده مختزای فن اینه که باید اول ببینیم شما اجماع رو به چه نقطه‌ای حجت می‌ذارید یعنی چه یعنی وقتی می‌گید اجماع حجته و می‌گید مراد ما کاشفه و نظام اجماع علمای شیعه فقط اعتبار داره اجماع علمای مدینه مثلا اجماع علمای با حنفی اعتبار نداره خب این سواله شما مطرح میشه اول باید اوصاف این اجماع رو بگیم بحث علمی چیم اجماعی کاشف از قول امام که مثلا در فران زمان باشه اجماعی کاشف از قول امامه که دارای این خصوصیات باشه اول قاعدش اینه که شما اثبات بکنید چه اجماعی کاشفیت داره این یک شما اگر اجماع رو مطلقاً کاشف نمیدونید خب بحث خلال باید لخوه چه, چه نکته‌ای داره وقتی شما حجت نزدون سین اجماع رو بحث حجیت خبر واحد شما در جایی بحث حجیت این که اولا اجماع رو قبول بکنیم اون وقت اشکال بکنیم بگید ناقل اشکال چیه ناقل اجماع اتفاق رو نقل میکنه این خبر حسیه اما اونی که حجیت داره قول امام این حسیه توضیح این مطلب رو چون مرمون مصاد نقرموندن و در ارتكاز اصولی این هست عرض میکنم. یه بحثیست که اینشانا تو بحث واحد ما هم متعرض میشیم. یه بحثی دارن آقایون که وقتی دلیل آمد بر جیگه یک شیل اون دلیل در جایی تاریست که دارای اثر شرعی باشه این قاعده کلیست. در ارتکازی. ننوشتن در افعادشون هیچا. اما در ارتکازشون هست. و دقیق بکنیم وقتی حجیت بر یکی ثابت میشه که دارای اثر شرعی باشه این در ارتکازش وقتی شما میگین سید مرتزا نقل اجماع کرده خبر واحد شما وقتی میگین حجیت خبر واحد یعنی اثر شرعی برش بارد بشه وقتی این شبه محبوب اینجا هست سید مرتزا اتفاق فقه ها را میکنه که حسیز این اتفاق برش اثر بار نمیشه قول امام برش اثر بار میشه که حسیز روشن شد اشکال چی؟ اون اشکال اشکال مرموم استاد چون تفصیل نقرمونن این یک، ولی زا همین اشکال هم تو اخبار مر هست که این شبا توضیحش مفصل عرض کن اینی که کلینی میگه حد و علی ابن ابراهیم که اثر نداره اثر مالا قالت صادق اونم که کل رو قاله صادق ولی ذا تا ادله حجیت قول کل نیرو نگیره نمیتونیم قول زراره که مثلا قالت صادق درستش بکنه اونجا هم همین اشکاله در اجماع هم همین اشکالات استاد تطریح نگردن خاص اجماع تو حاشیه کتابتون این رو توضیح بدیم این اشکال مرحوم استاد که حجیت خبر واحد شامل اخبار هست نمیشه اون زیر بناش اینه چون میگن وقتی حجیت تعبدی شد خوب دقت بکنید حجیت تعبدی باید به لحاظ یک به اثر شرعی باشه تا حجیت بیاد اگر اثر شرعی ندود حجیت نمیاد این قاعده کلی دیگه اون وقت وقتی سید از خبر از اجماع میگه یعنی اتفاق وقوع ها یک شیعه حسی داریم اتفاق فوقه این که اثر نداره شیعه حسی از اتفاق فوقه ها کشف میکنیم قول امام این حسیه این متعلق خبر نهید متعلق خبر یه امر حسی سید مرتزم یه فوقه های بغداد عقیده شنیم از الله حجی از شامل این کلام نمیشه چون این اثر نداریم علماء بغداد گفتن بگم اثر مال چیه؟ مال قول امام قول امام حدسیه پس ما یک نکته ای داریم که باید وقتی صحبت از تعبد و حجیت میکنیم اثر شرعی بار بشه اثر شرعی در اینجا بر اونی که محسوس بار نمیشه بر اون که حدسیت بار میشه خون بل ملازمه است حجیت خبر وارد شامل اینها نمیشه فما ول اثر و شرعن حدسیت و ما و مخبرو به حسن اثر شرعی نداره یکیش اثر شرعی نداره بسنشون اشکال بیگم چون من رو مستاد اشکال کنم که هر سیست تقریب کامل اشکال اینجوریه هایم خواستن تو هایشوهشون بنویسن چون اثر شرعی بر او بارو میشه این اصل روحیه اشکال برداره جوابش اینه که ببینید این دکتر فنی رو اینشون چون استاد اینجا هم پرمودن تو اخبار مروازت هم ما این اونجا هم توضیح خواهیم داد جواب این مطلبی ایشان اینه که ما باید ببینیم عدله حجیت خبر واحد چیه حق اینه نه اینطور ایشون اطلاع باگه اگر مثلا آیه نبع باشه تبد باشه بله حق باشه بس. اما اگر آیه نبع نباشه چون ایشون دلیل حجیت خبر سقه رو آیه نبع آیات نمیدونن سیره و اغلایی میدونن و امزای سیره از طرف شارع خلاصی دلیلی میشون دلیل بر حجیت خبر سقه رو به اصطلاف سیره و اغلا میدونن اگر ما سیره و اغلا دانستیم کنید توی سیره و این مطلب واضح نیست که حتما باید اثر شرعی باشه برایذا خود می سیره هم سیره و اغلا را در حجه خبر واحد در موضوعات خارجی هم جاری میدارن. لذا این توجه نشده. این اشکال که خبر واحد اینجا اثرش حدسی است و اونی که حسیص اثر نداره این به درد کسانی میخوره که خبر سقه یا خبر ععد رو تعبدن بود بهقدرور بودیم. اما اگر نکته هجی از سیره اوقلار شد سیره اغلا فرق نمیداره زراره بگه قاله ساده یا سید و بگه علمای شیعه فتواشون اینه سید فرق میگه سید و مرتزا تقصد اون که اخبار داده خود؟ زراره هم تقصد اون که اخبار داده اگر نقطه نقطه سیره اوغلایی شد در سیره اوغلایی فرق بین این که حالا اون اثر شرعی داشته باشه یا نداشته باشه نداره ان تو بحث اخبار معل واسطام جواب دقیقش همینه ان شاء الله اونجا از معضلاته و اگر از این جواب وارد نشیم اون اخبار معل مشکلش حل نمیشه ان شاء الله توضیحش عرض میکنم اشکال اخبار معل را اساساً معتزله مطرح کرده تاریخ داره و انصافاً هم اگر اون رازی رو که مقدماتی رو که اشاعر گفتن اشکال معتبره وارده اشکال عقلگرها وارده جواب هایی که آیان دادن نمیتونه حل مشکل بکنه اینشالا در محله خودش عرض خواهم کن پس بنابراین در اینجا این اشکال استاد به این مقدار وارد نیست ایشون میگه اونی که حسیث اثر منداره اونی که اثر داره حدثه به ملازماز قبوله مطلبان قبول جای بحث نداریم ما لکه این شما دلیل حجیت خبر سقه رو اغلا میدونید ما میگیم اغلا دنبال این نیستن که اثر شرعی باشه یا نباشه خوب دقت بکنیم اغلا میگن اگر سره مطلبی رو گفت شما قبول کن تا حالا سقه میگه حالا صادق قبول کنیم سر میگه علمای بغداد فتح باشید قبول چه فرم کنه؟ در سیره اغلا چه فرمی کنیم؟ حالا فقط به اینه شما میگید من از کلام سید مرتضی که فقهای بغداد اینو گفتن قول امام حق نمیزنه خب به شما برمیگرده اون وقتی به عوجده خبره چرا نداره این برگشت به همون اشکال اول من اشکال در اشکال شد اشکال اول من مبنای شما در کاشفیت چیه اون اول توضیح بدین اگر شد گفتید اصلا اجماع فقها اجماع قطعی فقها هم کاشف نیست چی فایده داره با کلام سید مرتزا اتفاق ثابت میشه با کلام علامه اهلی اتفاق ثابت میشه فرض کنید اما به نظر شما فایده نداره این بخص ربشی به حجرت خبر سقه نداره پس بنابراین از نظر فمنی شما باید بیایید در درجه اول اثبات بکنید چه اجماعی رو حجت میدونید اگر شما گفتید من هیچ اجماعی رو حجت نمیدونم او فایده نداره اما حجیت خبر واحد اینجا رو میگیره اما فایده برای استدلال شما نداره. میشه که فرض کنید ثقه زراره از مالک ابن انس نعر بکنه. خب نعر بکنه. برای شما اثر شرعی نداره. اما حجیت خبر ثقه اون رو میگیره. برای شما اثر شرعی نداره. زراره از حکم ابن اوینه یعنی نعر بکنه. ابو زراره ثقه اگه نعر کنه از, از حکیم. تصادفاً زراره شاگرد حکیم بوده. اول. از حکم نهاری خب زراره بیاد از حکم نهاری میکنه. اون سیره اقلایی که میگه کلام زرار و حجت از امام صادق نهاری بکنه میگه از حکم نهاری بکنه فال فهم بیدون شما به عنوان یک خقیه شیعه میگید از امام صادق رو قبول می و از حکم رو قبول می اون بحث مروض به شما هست اون ربطی به حجیت روشنی شد ربطی به حجیت خبر وارد نزده چون شما مدناتون در حجید خبر واحد و اقلائیه سیره اقلائه هست سیره بین این دوتا فرقیدی میبینه این نکته رو باید کاملا رو نه که اشکالیشان عدله حجید خبر واحد شامل خبر حدسی نمیشه نه اون که الان خبر واحد اون رو میگیره نقل اتفاق آیا این اتفاق کاشف از قبل امام هست یا نه خب ادلی میگن بله هست میگن سهذ موضوع علامه اگر نقد کنه کاشف عدل حجه اونجوری میگیره ادمیان میگن کاشف نیست مثل شما نمیگیره نمیگیره نه به خاطر حجه خبر. به خاطر اینکه شما اصولا اتفاق رو کاشف نمیدین اما اگر شما این گفتی نه یک اتفاقی که مثلا اینجوری و اینجوری و اینجوری باشه ما حجت میدین ممکن است یک ثغه همون اتفاق اونجوری رو از نقد کنه چی فرض کرده پس اشکال در این حدی نیست که ایشونو فرمودن مضافر یک نکته اینه که باید شما اول بیاییم ببینید که اجماعی که حجیت میدونید چیه شما که هیچ اجماعی به حجیت نیستیم به بحث چه اصلا به خبر باید شما فایده برای شما داره نه اینکه که عدل حجیت شامل اون نمیشه میشه اما به درد شما یه فقیه نمیخوره بحث دوما واجب این که انصاف قضیه نقل اجماع حالا به خبر وارد یا متواتر یا مستفیز انصافا مختلفه خب یک نواق نیست که ما افرادی مثل علامه داریم افرادی مثل سید مرتضی داریم علامه داریم بعد فرص که مثلا صاحب جامع و غاصب داریم بعدها فرص مثلا مرحوم مقدس ارد محقق اردوی داریم بعدها مثل صاحب جواهر داریم اینا ادعای اجماع میکنن، خب این اجماعات مختلفه یک نیست که. اینکه که ما بیام همه رو به یک چوب بنوازیم این انصافش خالی از شبه نیست مثلا سوال جواهر بیاد ادعای اتفاق و علمای شیعه بکنه اصلا ما کار به خبر واحد اصلا اغلا این, اتف... این نقل رو حجیت نمیدونن وله بلا خبر واحد حجیت باشه چون اغلا حجیت رو جایی میدونن که شما دسترسی نزدید دسترسی داریم که حجیت معنا چون صاحب جواهر اگر بگه فقه های شیع قائل بینن فقه هایی که ممکن است صاحب جواهر بشون اطلاع داشته باشه من نداشته ممکن ممکنه چه رو از مشایخش باشه و الا بقیه اقوال و واضح هم از مفتال کرامه گرفته از کلمات علامه گرفته از مراجب کلمات علما گرفته واضحه خب من مراجع مراجبه شون ما, ما بیاییم نقل اجماع از صاحب جواهر بکنیم معلوم نیست اصلا سیره اغلایی در اینجا جاره بشه تعمل بکنم چه سیره ای هست در اینجا صاحب جواهر گفت علمان اینطور پرمودان خب کتاب ها جواهر از کجا آورده هوا که در دیگه اقوال رو اصلا گاگایش ها واقعا هم گاهی یک صفحه یک صفحه یک صفحه, صفحه. صفحه. نوزی چاپ قدیم اینان عبارت مفتحال کرام هست نه نمیستن تا خوش شامل این ما م عبارات اختصال کرانادر بینها و ذات کشف اللسان است خب مصادر ایشون بشر دیگه مثل ما دیگه چیز خاصی که نداره علم یعوفی که نداره ایشون که ایشان ممکنه چهار تا آرا از چند کتابی که از مشایخ ایشون یا مرحوم شیخ جعفر کارش اضافه است که در بعضی از رسائل ایشون فرسین کلان دو تا سه تا چهار تا فرسون حاشیه مرحوم صاحب مدارک بر کتاب فرسون ارشاد قواعدی که از کتاب در اختیار مرهوم علامه هلی کتاب ابن جنه پیشش بوده با کتاب نعبیعقیل و کتاب جعفی الفاخر جعفی خب درستی ها به ما نرستی درسته این کلام نرگرده خدا علامه اصولا اگر کسی مثل اینها ادعای اجماع بکنه این غیر از مثل سید و مرتضی هست که الان ما مسادر کارش خبر نداریم صاحب جواهر ادعای اجماع بکنه اصلا معلومی سیره و که شما تعبدن قبول کن که علمای شیعه گفتن چرا تعبدیم؟ چه سیره و اغلایی هست؟ خوب دقت بکن چه سیره و هست که نقل اجماع صاحب جواهر قبول بکن چرا؟ چون مسادر جواهر در اقوال و علمای پیش ما موجوده اون ما نگاه میکنم چرا بسید به تعبد؟ ما فوقش ممکنه با مراجعه خود 90 تا رو پیدا کنیم 5 تا از جواب بگیریم البته اگه ما نقد تا مراجعه کردیم و بود قول جواهر بر اون 5 تا که احتمال بودیم از مشایخ یا بعضی از نسخ مخطوط که به ایشان رسید یا در اختیار دیگران نبود این هست این احتمال در حد احتمال هست بد نیست و اما اینکه بیان بگیم تعبدن قبول بکنیم این روشن نیست این راجعه به خلاصه مناقشات با مرحوم استاد پس بنابراین حق در مقام این بود که در بحث اجماع مرحوم استاد اولا خود اجماع محسر رو مورد بحث قرار می دادن اوصافی برای اجماع محصل ذکر می کردن که این اجماع با این خصوصیات ما کاشف می ایشون با هیچ خصوصیاتی کاشف نمی‌دونه چون ایشون کاشف نمی‌دونه دونه خایی نخواهی هم خود به خود منتفیه چون نهایتش منغول میخواد بگه اتفاق هست چون میگه اتفاق آن کاشتون اما اینکه که عدله حجیت اجماع منغول رو نگیره که ایشون اشکال کرد اون اشکالیشان وارد نیست البته رو مبناییشان چون مبناییشان بر این است که حجیت خبر از جهت سیره اغلاست سیره اغلا در این جهت حرقی نمی‌دونه. میگه شما بدونید که علمایشی اینه گفتن؟ بله من از این قول علما کشف نمیتونه خبایی به شما برمیگرده یک آقای دیگه کشف بگرده یک آقای دیگه از لحظه اجباد دو قبول میکنه. از کلم الله محمده این استراباده که دیگه رئیس اخباری ها و اولین است که به شدت به اجماع قبول کرده گفته بعضی ماها شما قبول میکنن پس بنابراین این نحوه بحثی رو که مرموم استاد به این شکلی که ما تیروز خوندیم انصافا خیلی به نظر روشن نمیاد چون نه ایشون لطف قبول کردن نه تزمان و اجماع دخولی به اصطلاح و نه اجماع حدثی رو به عنوان حدث قبول کردن در هیچ طبقه هم قبول نکردن پس بنابراین بهترین راه ایشان این بود یعنی روی مبانی ایشان اینجوری باید نتیجه میگرفتن یک ما دلیلی بر قدیت اجماع با عنوان کاشف نداریم خود اجماع و عنای مصدر تشریح که کلا چی قبول نداره اجماع با عنوان کاشف هم قبول نداریم دو کسی هم که نقل اجماع بکنه به درد نمیخوریم حالا ایشون رفعاً روی مسئله حدش تاکید کرده نه نکته حد نیست نکته اینه که فوقش بیاد نقل بکنه ما برای ما مثلا وجدانی بشه وجود اتفاق وجود اتفاق وجدانی هم به درد نمیکنه چه رسد وقتی به بجیانی به دردن هم منغول به طریق اولا پس منحه بحث این صورت بود از نظر علمی و از نظر منغوشی که خود ایشان دارن و اما بحث رو به نحوی که ما میشه الله تعالی بکنیم ما با ایشان اول بحث مبانی خودیشون برد بردن ما چه به مسئله اجماع بدون شک در مسادر احل سندر زیاد نقل شده بحث سنگینی هم هست و معروف در هم در اجماع ارس از مظهوم شیش انصاری هم در اول رسائل در این بحث داره که الَّذِي هُوَلَ اَصْلَهَمْ و اَصْلَهَمْ وَحَمُلَ اَصْلَهَمْ یعنی اشاره کرده به دور به سقیفه چون به اصحا حجیت مذهبشون برای اجماع است و حجیت اجماع هم بر مذهبون حال دار دو دور حالا نمیدونم به هر حال به احتمال بسیار قوی قضایای سیاسی در تشکیل این فکر قطعاً گذار بوده مثلا ابن عبدالحدیث در آخر ابن عبدالحدیث سنی ها میگن شیعه است علوی فی شیعه باز ایشون در استدلالاتی که بر صحت خلافت ابوبکر میکنه یه جدیق هست که میگم 3 یا 4 الان یادم نیست چن سالون هم اشکالات شیعه رو بر عمر و ابوبکر مثلا بر عمر 10 تا 20 و سعی میکنه جواب بده است لالات بحث خلافت رو سعی کرده جواب. من از ادله که کهشون داره اجاعه بر خلافت عیکر بکر اینجور تصویر میکنه. میگه درسته اب او متصدی به خلافت نش مخالف داشت که یکیش مثل علی ابن عبی طالب بود بنی هاشم بود از بعدها به اعتعاین علییه نووییتال بهد کرد و یکی هم سعد بن عباده بود طایفه از خرج از انصار بودن که تا آخر هم بیعت نکرد با ابی بکر حالا میگن همین اون بیعت، اما سعد بن اباده بیعت نکرد. میگه بعد ها در زمان عمر باز همه بیعت کردن الا سعد بن چون سعد بن با عمر شخصا بد بود، اصلا اختلاف شخصی باش داشت. و تصادفا محله‌ای هم که میشه هم محله‌ای بود که عمر خونش اونجا بود. از وقتی که به اصطلاح حاکم شد عمر گفت مثلا تو این محله دیگه زندگی نمیکنی، رفت شام، از مدینه خارج شد در اینکه نزدیک آمان نباشت رفت شام در شام هم خب میدونی ترورش کردن اول ترور در دنیا اسلام همینه بعض روشید دیگه نصف رفت همینه شب در بسیار ماه های شام راه میرن بعد صبح دن جسدش رفت تیره بزده بودن و ادعا کردن که جنیا ها او رو کشتن و این شعرم در آردن قد قتلنا سید الخضراج سعد ابن اباده، الى آخر این یک قصه هم داره که میگه مأمونا چون این قصه درست باشه به فضل ابن شازان گفت که شما که میر علی ابن ابی نظر شورای قبول نداشت. خب, خب داخل نمی‌شدی چرا در شورا شرکت گفت تاثیر که جن او رو بکشن مثل سعد بن سعد رو عباده حالا به هر حال این سعد بن عباده هم زمان و عمر کشته شد حالا وله خودشون جن. جن بسیار بعد ابن اول حدید میگه خب بعد از قتل سعد بن عباده اتفاق شد بر خلافت و عمر تن علی عبدال که به کرده بود مخالف اون بود از طرف دیگه اتفاق هست هر کی خلافت عمر قبول داره خلافت ابوبکر رو قبول داره پس خلافت به قضیه چیوری دعوای اجماع درست کردن با اتفاقی حالا بعد از 4 سال 5 سال بعد از قتل بعد از استه آمده با او کشف به اساس صحت به ادسان پس این مطلب که اجمالا که شیخ میفرماست راسته در کلماتشون هم زیاد هست راسته اما ظاهرا در مبانی فقهی فکر نمیکنم خیلی متاثر به او شده مبانی فکریشون فقهی فقهیشون به نظرم فرق میکنه خیلی تأثیر به این اجماع نیست فکر تصور من اینه که جهت دیگه البته راجع به اجماع بحث خیلی کرده و فروع و تفریعات و حرف ها و, و یک اده از فروع و حرف هاشن هم خیلی نامربوطه این اهل عصر واحد و تداخل عصر اینو اجماع صحابه لذا آخه این نتیجه ای که گرفتم هم ادهشون یک لحظه یک روز همه امت اتفاق میکنه این حجته ولو قبلش اختلاف داشتن بعدش اختلاف داشتن یک حرف های ضعیف و بی, پر... بی... بی اساس و حرف بی سر در اینجا انصافا زیاد گفتن که ما هم نیمیخواییم معتل البته مشکورشون اجماع رو قبول کردن به نظر من نیامدن درست یک تحلیل واقعی ارزش بدن و این که ما رفتیم به خلافت بریم احتمالش هست اما ما خودمون رفت دیگری عرض میکنیم که حالا بعد نشه. چون در اینجا دو خط متقابل دقیق وجود داره یک عده که مصررن به اجماع یک عده که مسررا به عدم حجیت اجماع من گفتم برای نمونه دو تا کلمات خونده بشه و یک مقدار آشنا بشین با مطالبی که اونها مطرح کردن و اصولا از نظر اون زمینه ها چطور منتقل شد به زمینه هایی که ما داشتیم در باب اجماع در پیش اهل سنت که بزرگانشون قبول کرده ما می می‌کنیم فعلا مثلا یک شخصیت بزرگ علمیشون که غزالی باشه اینجا حالا بخویم بقیه رو بگیم خیلی طولانی میشه در خدا عارض مراجعه کنه المستصفای که ایشون داره ایشون تهذیب هم داره من نمی‌دونم تهذیب چاپ شده نه آوینی آه که اهل اطلاع ببینین در این کتاب ها تهذیب اصول ایشان چاپ شده من خبر ندارم مثلا تهذیب نشید در اینجا چند بار میگه بغزاکناف تهذیب تهذیب اصول نمیدونم چاپ شده تا معلوم میشه کتاب مفصلی بوده با اینکه مصطفی خودش کتاب بزرگی نسبتاً اون از مفصل تر بود به هر حال در جنده اول از این چاپی که یک چاپ تقریبا معروفیه چاپ‌های دیگه هم داره که با کتاب ها الرحموت تقریبا یه کتاب اصولی بوده در دنیای ها زمان کتاب معروفی بوده در حد خودش و هم‌دگی یک جا چاپ شدند این در بالای صفحه است اون در پایین صفحه از صفحه 173 در جلد اول غیر از این چاپی که مستقلا هم داره تا به اصطلاح بله بیویس دو هیفته ایشون متعرض این مسئله اجماع شده و فصولی که داره بسه نصف نستو صفحه نصفش دیگه شون کتاب دیگه به هر حال اون وقت بحث هایی که به اجماع شده از خدم خیلی بحث های طبیل و عریضی دارن من مختصر به مقداری که لازمه جمع بکنم بعدم اینشالله از کتاب ابن حض چون ابن حض باز به شدت جزو مخالفین اجماعه ما هر داره بکیم هم اونایی که به شدت مدافع اجماعن هم اونایی که به شدت مخالف اجماعن خب چون قد تقریبا تو اینها به قول خودشون چون از هستان متله این در دنیا اهل سنت اله یا مناحالا خود جسلستان فاید یکی دارن. با اونم قذالی ما هم نمیگفتیم تا زمان مرحوم آسر باقر شفتی که به ایشان حجت الاسلام گفته شد حالا که دیگه اوضاع دیگه شد الان کیف ما خان حتی برای مرحوم صاحب جواهر هم کتاب جواهر زمان خود ایشان چاپ زم... زم... جواهر رسائل شیخ انصاری زمان خود ایشان چاپ شده مثلا عمدت الف والمحققین و المحققین و زبدة المدققین از این جور کتابا نوشتن حجت الاسلام برای ایشون نانوشتن الله جلوی خود شد الان ما در عراق میگن البته قبلش ما داریم در خود عراق غیره اما رسما حجت الاسلام برای اولین بار برای محوم ویزای شیرازی بزرگ مرحوم اسدالله شیرازی صاحب قضیه مروب تنباکو برای ایشان رسما در عراق اولین باری که گفته شد حجت الاسلام رسما قبلش هم ایده ی داره من در کتابا دیدم اما به طور رسمی که اطلاع شد مرحوم اسدالله حسن شیرازی بود احتمالا وقتی که ایشان رفتن برای سامرا احتمالا سال 1291 مرحوم آیه شیرازی از نجف هجرت ناگهانی به سامر را یه وقتی مناسبت ما توضیحاتی الان می‌کنم. ما ماکا یعنی مثلا دیگه نامه ها و عبارات و اینها رسما در ایران و در ایران قبل از ایشون و قبل از صاحب جواهر مرحوم وجدان شخصی قبل از جواهر در ایران مرحوم آیه شخصی در اصفهان ایشون رسما صاحب انسان که متعهد اطلاع مرحوم شخصی بود تو ایران بعضی ها می نوشتن تو بعضی عبارات آمده اما رسمی که می گفت حجت الاسلام مراد مرحوم شخصی بود باستی که از اطراف رشد هم از ایشون یعنی اسفانی نیست اهل گیلان هست بله رشدی هم اصلا شفتی هم برانه کسی اینطور ایشان بلا اشکال شخصیت بزرگی در اسفان بود و خب مرد جامعی هم هست یه چهار جل کتاب ایشان شرح سلاته شاف شده به نهر افصفه اصطلاح و خیلی هم بحث‌های تصوفی ایشون، اهل بحث‌های رجالی هم هست، خیلی چندین رساله هم در رجال از ایشان هست که خب انصافا نسبت به زمان خودش خوبه، انصافا. حالا چون امکانات فراوان شده تحقیقها به بیشتر شده، مصادر می‌شناسه و به اون زمان جزو کارهای خوبه، یعنی جزو مباحث رجالی است که شروع کردن علمای ما تحقیق کردن به نوشته های قبلی اکتفا نکنند، دو مرتبه خودشون مراجعه کنند، مسادر اولیه نگاه کنن روایات نگاه کنن این چون نبود در قبل نبود این از زمان وحید بهبانی و از زمان مثل جامعه روات اینا شروع شد مرموهای شخصی همی که از کسانی بود که تو این جهت انصافا تأثیر داشت خب نسبت به اون زمان خوبه من یه سری سوره سالیشون اجمالا نگاه کردم و حالات ایشون خوبه متفروقات هم داره خیلی یعنی از این طرف اون طرف میره اونم خوبه نشون میده که معاملات علمیشون خوبه رضوان الله تعالی علیه علیه اله حجیت اجماع در بین اهل سنت با عنوان یکی از مصادر تشریع با عنوان کاشف نیست و در اجماع در اهل سنت بحث های خیلی فراوانی شده و انصافا مؤذم بحث هاشون هم علمی نداره بی پایت یعنی نمیشه اثباتش کرد به زوغیات اشوه به برهان علمی به روایات به آیات نمیشه مطلب رو اثبات کرد اصل خود مطلب رو هم به آیات و روایات نمیشه اثبات کرد چه برسه به این خصوصیاتی که داره به هر حال من یه مقداری و از مسائلش رو به مقداری که آشنایی پیدا بشه عرض می کنم. راجع به حجیت اجماع که ایشون الباب فی اثبات کنهی حجتا علا منکری که ایشون متعرض حجیت شده خیلی سعی کرده جمع جور صحبت بکنه میشه مراجعه کرد خلاصش اینه که کسانی که منکر حجیت اجماع اندار ایشون آمده گفته که در اینجا که اجماع یعنی اتفاق بعدم ادهه گفتن اتفاق پیدا نمیشه ایشون میگه چرا اتفاق پیدا نمیشه بنابراین امام اصولیوا روز دروسی واجبه اتفاق برش پیدا میشه این مطلبی که ایشون اشاره میکنه اشاره است به یکی از اشکالات منکرین اجماع یعنی منکرین اجماع دو سنخ اشکال دارن یک اشکال صغروی دارن یک اشکال کبروی دارن خوب بگذرو ایشون سعی کرده هر دو رو جواب بده به این تعبیر من نه اشکال صغروی اینی که اصلا اتفاق پیدا نمیشه حتی میگه زمان صحابه حتی زمان رسول الله خب دیگه اصحاب چه دیگه بوده؟ اما بعد از رسول الله، ایده اصحاب یمن، کوفه، خراسان، اون جای متعدد یکی از اشکالات ابن اینه. اصلا امکان نداره اتفاق. پس یه اشکال اینه که شما بحثین از چیزی که امکان وقوعی نداره اصلا الان شما در این زمان امکان نداره علمای اسلام برای این چیزی جواب بکنن. با این پراکندگی که داره. یه دفعه میگن پراکندگی دارن یه دفعه میگن اختلاف ذوقی دارن یه دفعه میگن یک ادعاشو مثلا میگن اینا آه اشراط ثابت هر از یک اشکالات صغروی اینجوری شما من دیگه بعضی چیزی گفتم شما برگشت خودت تصور بفرست یه اشکالات صغروی که اصلا این اتفاق پیدا نمیشه این یه بحث لذا مثال هایی که ایشون میزنه مثل نماز و روزه و مثلا فقد وجدنا الامه مجمعا علی ان الصلوات خمسون و ان صوم رمضان واجبو خیلی عجیب از ایشان خب اشکال اون آقای که این اجماعی قطعا متجزم اینکه جای بحث داره که این مطلب قطعیه که در اسلام نماز خواندن متجزم اینکه جای بحث نداره نمیخواد اجماع تعبدیه این که اجماعی نیست اون اجماعی که محل کلامه مسائل حادثه‌ایه که یا در قرآن هم هست یا در سنت هم هست به اتفاق فقها میخوایم او رو اونو برداری این مهمه مثلا عمر گفت متعatkan کات الله اهل رسول الله میگن صحابه هم ساکت شدن پس این اجماع شد. اونا اینطور میگن این کسی که میگه کانتا الله اهل رسول الله و انا احرمه ماوا این محل کلامه. دقت فرمودید. خودش هم در اسنام میگه بعد میگه که مثلا اگر بگی راکیون میگه حثیعتین کلام من نفهمیدم این سیاقیشو نگاه تو آخر نگاه کردن نفهمیدم یعنی این اصل مطلب رو جواب نداده انصافا این یعنی این که حوجهت الاسلامی شده دیگه الاسلام شد. یعنی از این چون بالاترین املا رو بردن خب مرد حسابی اتفاق بر اینکه نماز نماز 50 که این قطعی این نشماج و تعبد نمیخواد که آیات مبارکه کتاب روایات پیغمبر سیوه عملی قطعی اصلا جای رو به اجمال نداره این چه نکته‌ای داره حجت الاسلامی خاصه بحث اهل سنت دیگه من دیگه نمیگم خداوای مراجعه کنن اصلا این در سهررش محقق نیست اصلی که شما فهمید در نسومات ارتباط دارن خب اینم در کنار مدل دیگه یعنی مثل کتاب مثل روایت بیان بند این خاصی به اجماع نداره اصلا اجماعی نداره الا اجماع نداره ولی حالا ولزاً، ولزاً، ولزاً، الان ما در مجموعه دنیای اسلام کسانی که مسلمانین افرادی داریم که تعبیر کردن میگن نماز برای تکامل برای این که ما اخلاق خوب داشته ما اخلاق خوب داریم میگن نماز میخود میکنید خب یک چشونی میگن تو ایران اهل حق اینطوریه میگه نماز نمیخویم بخونیم چرا بخونیم ما دروغ نمیگیم خیانت نمی کنیم جنایت نمی کنیم آدمکشی نمی کنیم بخوای چرا نماز بخونیم نماز پس اینه کیشون میگه صلوات خمس اگر مراد و بر اساس اون میگه مسلمون هم هست خدا هم قبول داره پیغمبر هم قبول داره اما اینا رو پیغمبر رو برای camper اخلاق خوب ما اخلاق خوب داریم دیگه نیازی نذ هم عبادت به خاطر ذاتیه کلی یقین دین تو دقیقاً اگر این باشه این به این معنا که میگیم مثلا این افراد منحرفن ولی ذا وجود اونها ب... اگه نه اجماع هم محقق نشه چون ادعی مسلمان از نماز هم نمیخورن وزن نمیگیره حکم به اسلامشون هم میکنه خب این جوابش اینه که قطعاً چون این باطله و هیچ مدر به اجماع که نیستن قطعاً بلکه به حکم به فسق اینها میشه یعنی ما تو این مسئله اصلا ربطی به اجماع نداریم اینقدر ادله فراوان آیات کتاب سیره قطعی این نوبت به اجماع و تعبد نمیرسه مثلا جای این هر حرفانی به هر حال این یک اشکالی است که به نظر ما تا حدی وارده مگر این که اجماع رو بندازن روی یک محدوده ای مثلا اجماع رو بندازن روی اهل حل و عهد یا مثل اهل مثل مالک بندازه روی علمای اهل مدینه یا مثل ظاهری ها بندازن روی اجماع صحابه کارش باید بکنن این مثلا شیعه اجماعیل احره اینی که در کلمات داره امیر صادق و... امیام و... و... ساده فهمدن راجب زیتان ید و ایل رضا من آل محمد اینم هم همینه معناش رضا من آل محمد یعنی به عبارت اخرى میگن این خلافتی که بنی امیه دارن باطله و بدیلش چیه برگردیم به اهل حل و برگردیم به علمای مدینه برگردیم به علمای شهرهای بزرگ اهل حق در کوفه و بصره و مدینه و مثلا چند تا شهر بزرگ طرحی رو که امام صادق می‌دادن و این زیدیان میدادن برگردیم به اجماع اهل بیت پر رضامن آل محمد یعنی برگردیم ببینیم مثلا آل محمدی در مدینه هستند در جای دیگه اینا کیو انتخاب میکنن؟ رضای این انتخاب اینا کی انتخاب میکنن؟ همونی که این انتخاب می‌کنن اون خصوص انتخابه پس یک ادم میگویند نه برگردیم هر کی که مردم انتخاب کن به عهده از مردم بگیریم دقت کنید این مطلب شرط تاریخی بودن این کلمه ی عرضه است محمد یعنی نه اهل مدینه، نه اهل نه اهل نه اهل خصوص نقل مدنی نقل مکه نقل بلاد نقل علوه خصوص علی محمد هر کی رو که انتخاب کرده رضا به استله ما انتخاب ما از اهل بی سوال می‌کنیم هر کی رو که اونا انتخاب کرده همون بشه خلیفه بعد از بعضاشن خلیفه عمی جانشین و جایگزینش اینه این اسمش عربه دامن آل محمده این تعبیر اگه در تاریخ یعنی خصوص انتخاب اینها نه انتخاب دیگه لذا یک اشکال اینه که این اجماع نخواهیم رأی همه بشه خب نمیشه حتی اگر ما بذاریم با عامه مسلمان پس انتخابات توی کشور اسلامی هست دیگه خب انتخابات پس این پنجه و پنج دستد به یکی رأی میزن چرا پنج دستد به یکی؟ پس اجماع نمیشه. اصلا اجماع محق در نیست تو انتخابات هم که میشه رفت نظر کامل اجماع انتخابات باز هم اکثریت رو میگیرن یک شبه اینه که شما میخواید بگید اجماع حجت این اصلا واقع علمی نداره واقع علمی نداره مذرم مخواه ایشون سعی کرده در اول بحث جواب کرده بحث دوم که خیلی مهمه که واقع علمی شه حالا برفرض هم اجماع پیدا کن کی گفت این حجت؟ خود قضالی معتقده که به سه وجه سه مسلک از صفحه 174 سه مسلک اول کتاب بعد روایات سوم هست حکم عقل شبیه هستی که ما میگیم دیگه این بحث میجرسید فردای انشاءالله و درباره کتاب یک آیه هست که خیلی بحث کردن که اینشاءالله اینکه به ذهنمون یاد از اللهم